وإذ قال إبراهيم عن هذا البلد آمنه وجنبني وبني أن عبد النصان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وآلِه والصحبِ أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقدر شهادت با شهادت الله اله اله الله و درس دیگر با شهادت ان محمد رسول الله صلی الله علیه و داشتیم لازمه شهادت این ایمان و باور ما هست به رسالت رسول الله صلی الله علیه و اون پیامی که فرستاد خداوند با آن آخرین پیامبرش خاتم النبیینش محمد صلی الله علیه و سلام پیامی که به دست رسول الله صلی الله علیه و داد قرآن بود اون قرآن که مسلمانان عزیز بودن، با عزت بودن و با عزت از دنیا رفتن به خاطر پایبندیشون و عملشون به اون قرآن. اون که خداوند در این قرآن وحی کرده بود بر اونها به اون قرآن عمل می رهرو راه قرآن بودن. می دونستن قرآن اونها را هدایت می کنه به سوی بهشت. اونها را هدایت می کنه به سوی رضایت خداوند. خداوند دلسوز بشریت بوده و خواسته که اونها را نجات بده و آنها را رها نکرده. خداوند بندگانش را رها نکرده بلکه برای آنها رهنمودی گذاشته. پیغمبری فرستاده. چون خداوند رحیم رحمانه، نمیخواهد منده ای را عذاب بدهد. و این رهنمودها را برای ما حفظ میکنه. خداوند در قرآن میگوید، اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا له لحافظون ذکر نازل کردیم و ما او را حفظ میکنیم یکی از معجزاتی هست که خداوند به رسول صلی اللہ علیه و وسلم داد قرآنش قرآنش را داد تا اینکه نمود و خودشون قرار بدن تا اینکه عزت بیابن سعادتمند دنیا و آخرت بشن ولی این قرآن بود این معجزه هست که کسی نتونست یک حرف از اون تغییر بده کلمه ای را از قرآن بر بداره 1400 سال گذشته هیچ کسی نتونسته بتونه باورهای قرآن را عوض بکنه و دستی توی قرآن بیاره این معجزه هست و صحابه و همچنین تابعین و بعد تابعین اسلام به شرق و غرب رسید خاطر عمل پیشینیان به این قرآن خداوند از ما هم همینو خواسته مثل اونها فَا اِنْ بمثل ما مَا اَمَنْتُمْ فقط فَقَد احتدو. اگر انها، اگر کسانی که بعد از صحابه بیان ایمانشون مثل صحابه بشه اونها هستن اونجا هستن که مؤمنن به راه حق و هدایت را گرفتن. ان فین امنو بمثل ما امنتم بهی. اگر ایمان آوردن به مثل اون چیزی که شما ای صحابه ایمان وردی، اون وقت هستن که اونها هدایت شده هستند فقط اهتدوا اون وقت هستن که راه هدایت را گرفتن بل قرآن راه و صحابه هم بهش عمل می بله اگر خداوند در قرآن می گفت مشروب حرامه هیچ وقت لب مشروب نبی زدن. ایمانشون داشت ایمانشون چین این بود یقینشون به قرآن بود که خداوند دلسوز اونهاست و خداوند مندی اونها را می خواهد خیرخواهی اونها را میخواهد. اگر می گفت زنا نکنید اگر می گفت لا, تق... لا تقرب و زنا نزدیک زنا نشید دیگه چشم نامحرم نمی گوشت خوک حرامه یا مردار حرامه هر چیزی که حرام میکرد خداوند در قرآن میگفتن چشم ما نمیخوریم بله این چنین ایمانش راسخ بود این چنین قرآن را باور داشتن تصدیق میکردند ما ایمان نداریم مگر اینکه تا اینکه قرآن رو تصدیق بکنیم مثل تصدیق اونها فان امنوا بمثل ما اگر ایمان بیارن مثل ایمان شما اون وقت هستن که اونها مؤمنن اون وقت هستن که اینا راه هدایت گرفته یعنی ما باید قرآن را تصدیق بکنیم مثل اونها باید به با قرآن عمل بکنیم تا عزت بیابیم نزل علیک الكتاب بالحق خداوند با قرآن را به حق نازل کرده بعد با این قرآن تایید کرده بر كتاب های آسمانی دیگر مصدقاً لما بین یدیه و قرآن همه که تصدیق بکنه تصدیق بکنه استورا انجیل و دیگر کتابات نیومده که یک دین دینی را بیاره بر خلاف ادیان دیگر خیر رسول الله صلی الله علیه و سلام بفرمایند بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و مدام کنیک کامل بکنم بله دعوت خداوند توسط پیامبرانش همش بنیکی بود همش بنیکی در رفتار با خداوند و رفتار با مخلوقات خداوند این دستورات قرانه خداوند خیر خیر ما هست به نسبت اون چیزی که به درد دنیامون و به درد اخرت خداوند اومده قرآن را به حق نازل کرده تا این که ما را نجات بده. خب این قرآنی که نازل شده بر رسول الله صلی الله علیه و سلم چی نوع ما باید در این قرآن داشته باشیم؟ قرآن ما میگوییم کلام حق است کلام الله باری تعالی هست. کلام خودشه. سخن خودشه. این سخن خودش را چونه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرده؟ ما... در قرآن خداوند شیوه های وحی قرآن را بهمون چنین میفرماید و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی خداوند با بنده ای سخن نگفته مگر با وحی او من وراء حجاب یا پشت پرده چنانچه در معراج از پشت پرده با رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن مستقین گفت او یرسل رسولا یا اینکه پیغمبری از خودش بفرسته یک کسی واسطه بفرسته مثل جبرئیل که پیغام خدا سخن خدا را منتقل بکنه به رسول الله صلی اللہ علیه و سلم پس خداون یا اینکه مستقیم خودش وحی میکنه از بالای آسمونها و قرآن را نازل میکنه بر رسول الله صلی اللہ علیه و سلم یا اینکه مستقیما با خودش سخن گفته و اونم در معراج و یا اینکه جبرئیل را میفرستد و سخن خودش را به دست جبرئیل میفرستد تا اینکه به صل الله عليه و سلم ابلاغ بکنه قبول داشته باشیم. ما باید اعتقاد داشته باشیم که قرآن کلام خداوند باری تعالی هست و این کلامش کلام حقی هست. نباید شک تردیدی داشته باشیم در اینکه این کلام کلام خود خداونده. سخن خود خداونده. سخن بشری هم نبوده. و هیچ از هیچ بشری نخواسته که دعوت بدن که اون بشر را بپرسیم یا کسی دیگر غیر از خداوند یک تا را بپرسیم. دعوت قرآن از اول تا آخرش دعوت به عبودیت و پرستش خداونده بله قرآن اگر میگوید قوم نوح نابود شدند به خاطر چی؟ به خاطر که عبادت خداوندی یک تار را نکردن و جز خدا کسی دیگر را صدا زدن فریاد زدن بله قوم ابراهیم هم همینطور نابود شدند. یا قوم موسا نابود شدن فرعون نابود شد چرا خداوند عقوبت سر اونها نازل کرد؟ چرا اونها قوم لوط را خدا چرا نابود کرد؟ جز این بود که اونها پایبند به دستورات قرآن دستورات کلام خدا نبودند. خداوند اونها را توبیخ کرد. خداوند اونها را نابود کرد. قوم سمود. بله اونها را نبود کرد. خداوند هم یاد در قرآن. چرا؟ چون به توشید خدا عمل نکردن. خداوند یا این که قصه از بیامبری، از بیامبران خدا میآورد تا این که بگوید عاقبت اونها، اونهایی که پایبند به توحید نمی عاقبتشون در دنیا چینی و در آخرتم همین طور باید خالد و مخلد در جهنم بمونن یا اینکه خداوند مستقیما از زبان پیامبران میگوید که من من من را فقط بپرسید و لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان عبد الله واجتنبوا الطاغوت این دستورات قرآن فرمایشات قرآن تمامی پیامبران میگفتن خداوند یک تا را بپرسید یا اینکه میگوید جهنم هست عاقبت مشرکین کسانی که من گناهان آنها و شرک اونها را نمیبخشم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويا اینکه خداوند میگوید بهشته و بهشت من از آن کسانی که سر به سجده من میگذارند و من را فقط میپرستان اونهایی که یکتا پرستند بله قرآن دعوتش از اول تا آخرش دعوت به سوی توحید عبادت بوده اگر حلالی کرده حرامی کرده تا این که ببینه آیا ما بند به كلامش هستیم یا نه ازش اطاعت و فرمانبری داریم یا نه قرآن دعوتش به اینه. اگر میگوید این حلاله تا اینکه انجامش بدیم. و اگر میگوید حرامه تا اینکه انجامش ندیم. خداوند اومده این تکالیف را بر ما بکنه تا اینکه امتحانمون بکنه که آیا ما میخواهیم منده خدا باشیم یا نه. آیا ما بندگی خودمون به خدا ثابت میکنیم آیا اون ادعای محبتی که داریم رسمت خدا آیا آیا تحقیقش میکنیم یا نه آیا محققا با عمل ثابتش میکنیم یا نه سر به سجدش میذاریم یا نه خداوند درباره این رسالت این قرآن چنین میگوید ما کنه لبشر ایو اتیه الله الكتاب والحکم والنبوه ما کنه لبشر هیچ بشر نیست که خداوند کتابی بهش بده حکمی بهش بده و النبوه و بهش بده و نبوته ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله سپاس سپاس بگه بغیر از خدا ما را هم بپرسید. هیچ وقت دستور خداوند این نبوده که کسی جز او را بپرسیم. دعوت قرآن دعوت تمامی های آسمانی به سوی این بوده که فقط خداوند یکتا را بپرستید اونم با زبانی خیلی واضح زبان عربی رسول خدا با زبان عربی واضحی اومده بود که مردم سخنش را بفهمن سخن قرآن برای فهم و درکه و اونهایی که نمیخوان قرآن را بفهمند از مشرکین خداوند با قلب اونها پلم شده افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها میگه قرآنو نمیتونن درک بکنن یا قلب اونها خرب شده قلب اونها پلم شده نمیخوام در قلبشونو باز بکنم به قرآن چون قرآن قابل درکه قابل فهمه به خاطر همین سرزنش میکنه نکوهش میکنه مشرکین که میگوید میگویاد لا يعقلون لا یفقهون. یا فهم ندارن یا عقل ندارن بله عقل و فهم و درک ندارن نسبت به قرآن چون نمیخوان بفهمن در... در صورتی که قرآن با زبانی اومده خیلی واضح خیلی آشکار و رسول خدا هم یکی از همون عرب بوده که اومده با زبانی واضح صحبت کرده و ما ارسلن من رسولین الا بلسانی قومه نفر نفرستدیم مگر با زبان قومش تا اون قوم بفهمن لیوبین لهم که به اونها تبییم بکنه آشکار بکنه واضح بکنه پیانبر نیومده که با زبانی با ما صحبت بکنه که ما زبانش نفهمیم زبان قرآن و زبان سنت زبانی واضح و ساده و خیلی آشکار بوده و طبعا جو كذا القرآن بگويات وما أنزلنا عليك الكتابة إلا لتبين لهم قرآ نازل نكاد جز اینکه تبين تبيم واضح بسسااز. إلا لتبين لهم الذي اختف فيه وهدا ورحمة لقوم يؤمنون هدايات باشه ورحمت باشه برای انهایی يخان مؤمن بشان مؤمن حقيقي بشان. از صورت خدا نورسر را چشم بذارند بله قرآن خداوند به حق فرستاده شده و ما باید این قرآن این کلام حق کلام باری تعالی را قبول داشته باشیم کلام خداوند حقه و به حق فرستاده انه و انه رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين با زبان عربی واضح بله پیامبر خداوند و که این رسالت، این قرآن را به بیاره، این را برامون بیاره تا اینکه راه نجات را انتخاب بکنیم، راه عزت را انتخاب بکنیم چنانچه اونهایی که عزیز بودن و عزت یافتن از صحابه و شرق و غرب را فتح کردن و جهاد کردند و کلبه حق را، خرمه را رسوندن با جهادشون ازمون خداوند میخواهد که ما مثل اونها استقامت بکنیم و ره را به راه اونها باشیم و اعتقادمون به نسبت قرآن کلام حق باری تعالی اعتقادمون به یقین به پیونده و بدون شک و تردید کلام خداوند بهش عمل بکنیم بله قرآن کلام خداوند کلام رسول خدا نیست و رسول خدا نیمده این قرآن را بیاره که بگوید کسی جز خدا را بپرسیم اومده رسول خدا و این قرآن را برای اومده اوورده تا اینکه خدا بنده یکتر را بپرسیم دیگه حق انتخابی هم نداریم جز اینکه به قرآن خدا عمل بکنیم و ما کنن لیمؤمنین ولا مؤمنتین اذا قضا الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره و ما کنن لیمؤمنین ولا مؤمنه هیچ مؤمنی وزن مؤمنه‌ای حق اختیار را نداره در وقتی که خداوند یا رسولش یک حکمی میکنن و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه نه زن مؤمنش نمرد مرد مؤمنش وما كان و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا اگر الله و رسولش امری بکنن حالا در قرآن میخواد در سنت میخواد اگر خداوند و رسولش امری بکنن چون اطاعت سنت اطاعت رسول خدا اطاعت از خود خداست و من یطع الرسول فقط اطاع الله کسی که رسول خدا پی بکنه از خدابن اطاعت کرده. بله و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخياره دیج حق اختیار ند ولن. اگر خدابن ورسولش گفت فلان کار را انجام بدیم، باید ما انجام بدیم. و اگر گفتن کاری را انجام ندیم، نباید اون کار را انجام بدیم. این لازمه ایمانمون با قرآن، کلام خدابن، کلام رب العالمین. لازمه ایمانمون به بهش هست غیر از اینکه ما باید اعتقاد داشته باشیم که این قرآن خیرخواه ما بوده و خداوند اومده با اون شخص خیرخواه رسول الله صلی الله علیه و سلم که خداوند میگه در واسوع المؤمنین رؤوف و رحیم که مهربان و دلسوز برای مؤمنان بوده قرآنم که سخن خداوند هست و این رسالت را به رسول خدا داده، قرآنم همینطور طور رحمتا للعالمین هست. رحمت خیرخواه ما بوده تا اینکه ما راه نجات را برای خودمون انتخاب بکنیم و بقاییم با عمل به اون به بهشت خداوند و سعادت ابدی برسیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و الله علی محمد و علی آل محمد.